روش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم که این چونین رفته است در عهد ازل تقدیر ما عقل گردانت که دل در بند زلفش چون خوش هست آقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد زن زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما با دل سنگی نتایا هیچ در گیرت شبی آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما